به نام خدا، با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، افسانه دالان و شالان متن کامل این قصه را از کتاب افسانه‌ها ها، نمایش نامه ها و بازی های کردی جلد اول می نویسیم. در روزگاران خیلی قبل، مرد ثروتمندی بود که زن و یه پسر داشت. بعد از مدتی زنش فرزندی به دنیا برد و اون فرزند دختر بود. از همون موقعی که دختر به دنیا اومد هر شب یکی از گوسفنداشون تو طویله کمرش میشکست و میمرد. مرد متعجب و سرگردون مونده بود که چرا گوسفنداشون به این بلا دچار میشن. این کار ادامه داشت و ادامه داشت تا زمانی که فقط یک گوسفند براشون مونده بود. پسر خانواده با خودش فکر کرد که باید سر و راز این کار رو بفهمم. عاقبت بلند شد و یه شب رفت و خودش رو تو اون طویله پنهان کرد. نیمه های شب که دیگه نزدیک بود خوابش ببره از صدای وزوز وز زنبوری به خودش اومد و خوب که نگاه کرد یه زنبوری رو دید که از درز در طویله داخل شده. زنبور به محض داخل شدن به صورت یک دیو در اومد و کمر آخرین گوسفندی رو هم که مونده بود و شکست و دوباره به صورت یک زنبور در اومد و بیرون رفت. پسر آهسته و آهسته زنبور رو دنبال کرد و از طویل بیرون رفت. دید که زنبور تغییر شکل داد و به صورت خوهرش در اومد و تو خونه رفت. پسر متوجه شد که خواهرش یک دیوه. رفت پیش پدر و مادرش و اون رو که دیده بود براشون توضیح داد. اما هرچه بیشتر قسم خورد اونا کمتر باور کردن. گفتم پسر جان کار غیر وقتی پسر از این کار نتیجه ای نگرفت تصمیم به فرار گرفت و از اونجا رفت. مونتاها قبل از رفتن دو تا سگ به نامهای دالان و شالان رو آورد و جلو هر کدومشون یه کاسه آب گذاشد به مامانش گفت که هر وقت آب این کاسه ها لیخن یعنی گلالود شد بدون که من ناراحتم و فورا این سکه ها رو به کمک من بفرست. پسر یه سه چهار سالی از خانواده دور بود بعد از این مدت برگشت و دید هیچی اونجا نیست. پدر و مادرش هم از اونجا رفتن. پسر تو کوچه ها سرگردان بود که ناگهان خواهره به استقبالش اومد و اونو به خونه برد. اسبشو رو گرفت و برای تیمار و مراقبت به تعیله برد. اما هنگام تیمار کردن اسب یه پای اسب خورد. بعد رفت سراغ برادری و ازش پرسید ای برادر برادره گفت بله خواهره گفت صف گلی, گلی، اصل گلی تو و سه غلاو و گلی برادره از ترس گفت بله از به من با سه پا حرکت میکنه خواهر بیرون رفت و یه پای دیگه اسورم خورد و اومد و گفت ای برادر برادره گفت بله خواهره گفت صف گلی، صفا گلی، اسب تو و دو قلاب و گلی برادر بازم از ترس گفت بله اسب من با دو پا راه میره آقه بعد خواهره چار تا پای عصب رم خورد و بار آخر اومد و گفته ای برادر برادره گفت بله خواهره گفت صف گلی، صفا گلی، اسب تو و بی و گلی پسره که اینو شنید از ترس دوید و رفت بالای یک درخت بلند و تناوه رو قایم شد. دختر برادره رو دنبال کرد که بخوردش. وقتی پای درخت رسید خواهره یه پای خودش رو تبدیل به اره کرد و یه پای دیگرش رو تبدیل به تیشه و شروع کرد به بریدن درخت. پسر که دید نزدیکی که درخت بیفده و دختره بخوردش، از اون بالا فریاد زد و مامانش رو به کمک خواست. مامان ناگهان متوجه شد که کاسههای آب جلالوت شده. فهمید که پسرش دوچار دردسر شده. به دالان و شالان دستور داد که به کمک پسر بره. دالان و شالان دویدن و پسر از روی درخت بهشون با فریاد میگفت: هی دالان بگیردش هی شالان بگیردش دالان و شالان دیو یعنی دختره رو گرفتن و پاره پاره کردن و خوردن بعد از اون پسر پدر و مادرش رو پیدا کرد و با همدیگه زندگی راحتی رو شروع کردند. دالان و شالان، افسانه کردی صفحه 308 گردآورنده علی اشرف درویشیان نشر روز چاپ دوم 1366 های عزیزم امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و در داستان های بعد هم منو همراهی کنید همه شما رو به خدا می سفرم. سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه جادویی